فرق خلیل به معنی دوست با حبیب به معنی دوست چیست؟ که ابراهیم را خلیل و رحمان میگن پیغمبر اسلام را حبیب الله میگن خلیل الله حبیب الله اگر موسیٰ را الله ایسا را روح الله ابراهیم رو خلیل الله میگن پیغمبر اسلام را حبیب الله میگن اینا فرقی هم داره یا مراد یا راضی داره میگن وقتی بین دو چیز فاصله بیفت بلد. چرا اینجا خله را به معنی دوستی آوردن در لغت عرب بین دل انسان و اون کسی که دل به او میدهد یعنی دوستش میدارن دل دادگی، دل بستگی چیزی میاد بین دل و او قرار میگیره اینو میگن خله یعنی انقدر این دل با او به وسیله این عامل پیوسته شد پس این میشه معنی خلیل یعنی بین او و اون کسی که در مقابل این خلیل است این غلب چنان به هم پیوند خورده که شکاف بین این دو را این رابطه دوستی پر کرده است ولی فرقی که بین خلیل و حبیب است در حبیب دلبستگی که از طرف مثلا ما بندگان خدا خدا رو دوست داریم انشاءالله الله مؤمنیم از مؤمن و دو حبن لله شدی کریم دلبستگی رو به خدا دارن اگر از طرف خدا هم او را بپذیرد و این دوستی را به طرف خودش سهر بگذارد میشه حبیب خلیل از این طرف میخواد اون شکاف رو پر کنه پس معنی حبیب از خلیل بالاتر از این جهت پیغمبر بالاتر از خلیل که حبیبه لذا برای امام حسین امام صادق علیه السلام می فرماید. اول بعد از ولی حبیب می آورد. بعد در مقابل نجیب در بعد از این در نجیب خلیل می آورد. یعنی همه اینها را دارد پس حبیب و خلیل به معنی نزدیک کلمه محبوب. محبوبه مورد توجه پرودگار آدم دوستی خدا با دوستی ما فرق داره ما دلوستگی پیدا میکنه تحصر قلبی پیدا میکنه منفعیل میشیم دوستی خدا یعنی قبول خدا خدا میپذیره خدا قبول میکنه کسی حبیب خدا شد یعنی خدا قبولش کرد کسی خلیل خدا شد یعنی خدا اون رو پذیرفت و اون رو قبولش کرد